آن دو توفنگچی که رفته بودند برگشتند و از اسب پیاده شدند فوری سرهای عصبانه ها تو هم رفت و با هم احوال پرسی کردند و سرشان را تکان دادند و خورناس کشیدند و افزارهاشان تو دست آدم ها بود شهرو به توفنگچی نان تعارف کرد و آنها نخوردند و گفتند تشنه هستند و شهرو رفت از تو کپر براشان آب آورد و آب خوردند بعد که خدا هم با اسبش رسید و از اسب پیاده شد و شهر و باز برگشت به نان پختن و کتخدا با او سلام علیک و احوال پرسی کرد. کتخدا همیشه آرام و خنده رو بود. اما حالا که این خبر را شنیده بود سهگره های صورتش تو هم رفته بود و مزاحمت تازه‌ای برای ده پیش می میکرد. این را میتونم خاطر جمعتون کنم که محمد این طرففا نیومده بچه که نیز خون بکنه بعد بیا تو خونش کر بشه. این را کت خدا گفت و با انگشت عرق پیشانیش را گرفت و رو زمین ریخت. درشتندام و بلند بالا بود و چهره سرخ چین زیر ریش سفید کوتاهی پنهان بود. تفنگچی چی گفت هر جوره باید پیداش کنیم. کت خدا گفت من حرفی ندارم. بگردین پیداش کنین. اما آخه عقلم خوب چیزیه. محمد آدم کارکشتهیه. از این کارای بچه گونه نمی کنه تفنگچی آذربایجانی بی‌تأمل گفت باید همه کپرار رو بگردیم کت خدا گفت بریم بگردین اما فایده ای نداره جز اینکه مردم رو به خودتون دشمن کنید محمد زن لچک به سر نیست که بیاد بره تو کپر کر بشه تو این سامون دو نفر مثل محمد پیدا نمیشه که دلیری و عقل او رو داشته باشه تفنگچی آذربایجانی به تفنگچی تنگزیر گفت تو اینجا باش تو ما بریم که پرها را بگردیم و برگردیم بعد توند با کت خدا و آن تفنگچی دیگر سوار اسب شدند و رفتند شهرون آنش را پخت و بچه ها چند خمیر کلوفت که با ماسه غاطی بود گذاشته بودند گوشه ساج و برای خودشان با آنها بازی می کردند و آنها شکل آدمک درست کرده بودند توفنگچی تنگزیر اسبش را به درخت کناری که بغل کپر بود بست و خودش آمد تو سایه کپر، همون سر جای اولش نشست و پاهایش را رو زمین دراز کرد. شهر و نانهایی را که پخته بود با احتیاط برداشت برد تو کپر و بچه هنوز دور ساج نشسته بودند و نانبازی می کردند. اسم چیه؟ توفنگچی تنگسیر از پسرک پرسید و چشمان درشت سیاهش، تو صورت پسرک دوید و خندید سهراب اسمم سهرابه پسرک از او بدش میآمد و به او خیره شده بود و با دهن پر جواب داده بود تو میدونی که سهراب اسمی پهلوونی بوده؟ منم پهلوونم بچه های از خود بزرگترم میتونم بزنم خبر داری بابا تا آدم کشته؟ کشته باشه به من چه؟ تو بلدی تفنگ در کنی؟ معلومه با تفنگ بوام در کردم، نشونم بلدم بزنم، تفنگ بوام خوبه، توفنگ تو مثل کنگ هیزان میمونه دلت میخواد با تفنگ من تیر در کنی؟ تفنگچی خندید و تفنگش رو نشان داد دلم میخواد با توفنگ تو اون توفنگچی ها رو که اومدن بوام ببرن بکشمشون، ازشون خیلی بدم میاد آخه اونا که از تو بزرگترن، تو چطور میتونی بکشیشون؟ میتونم، او که تنگسیر نیست شاید بلد نباشه گلوله در کنه تو میدونی بوات کجاست؟ اگه بدونم هم نمیگم پسرک برزخ شد و پا شد و ایستاد و رو پاهاش تکان تکان میخورد من که کارش ندارم، تو که میبینی من خودم تنگسیرم شهر رو از که پر اومد بیرون و کمی نان و خورما برای توفنگچی تنگسیر آورده بود و به او داد تفنگچی مثل اینکه منتظر بود شهرو یک چیزی برایش بیاورد بخورد آنها را از او گرفت و رو دامنش گذاشت و گفت دستت درد نکنه حالا تنها بود و شهرو و بچه رفته بودند تو کپر نان بخورند صحرا مثل تنور میتابید نانداغ بود و آن را با میلی میخورد گرست نش بود و گاهی هست خورمایی را قاطی لغمش میبن اید و خوشش میامد توفنگی ها باز برگشتند هر دو خسته و عرق آلود بودند توفنگچی آذربایجانی گفت من خودم همینجا میمونم شما به تاخت بریم بندر به نایب بگین هر چی گشتیم پیداش نکردیم این طرف ها نیومده بگو چه کار کنیم برای منم آزوغه بیارین که از گشنگی دارم میمیرم توفنگچی تنگسیر تمام نان و خورماها را بلیده بود و داشت تهمنده آنها را تو دهنش مزه مزه میکرد بعد پا شد توفنگچی ها به تاخت رفتند دو توفنگچی آذربایجانی از اربای را به درخت جلوی کپر بست و آمد تو سایه کپر نشست. سهراب از کپر آمد بیرون و روبروی او ایستاد و به او خیره ماند. یک لغمه نان و خرما تو دستش بود و داشت میخورد و نگاهش تلخ بود. گویی داشت به او میگفت برای چه اینجا نشستی پاشو برو گم شو و توفنگچی درش میخواست یک چیزی بخورد. لغمی تو دست پسرک اشتهایش را به جوش آورده بود و دهنش آب افتاده بود بعد با سهراب حرف زد تو پسر محمدی؟ بله پسرشم چه کار داری؟ اسممم سهرابه برادر دیام داری؟ نه خواهر دارم اون دختر کوچولو خواهرته بله اسمش چیه؟ منیشه تو نمیدونه بابات کجاست؟ چه کارش داری؟ باباد پنج تا آدم کشته. به من چه؟ کارش نداره. میخوایم باش حرف بزنیم. برو بزن. کجاست؟ رفته سر کار. رفته دم دکون. توفنگ چی سر رفت. گرمش بود. باز به سهراب گفت. باریکلا برو یه چکه آب بیار بده بخوریم. شهرو با کوزو پارچه آب از کپر بیرون آمد. حرفای آنها را شنیده بود و از حاضر جوابی پسرش خوشش آمده بود. دو دوتا پارچه پر آب خورد، بعد شهرو به او گفت، اگه گشنهی برم برات نون بیارم بخوری. تفنگچی با لبهای باز آبچکانش به چهره شهرو خیره ماند. چشمان درشت و چهره استخانی و سبیل کلفت سیاه داشت. بعد تو روی شهرو لبخندی زد و گفت، نخواهر، نمیخوام نمک گیر بشم. بعد با دستش دور لبهایش را پاک کرد شهرو گفت برادر نمک بشی یا نشی کاری ازت ساخته نیست توفنچی با تعجب پرسید یعنی چی؟ بخمش تو هم رفت شهرو جواب داد یعنی که خیالت راحت باشه که دیگه محمد پاش تو دواس نمیذاره اگرم بیادش هفته مثل شما معریفش نیستن توفنچی به تندی گفت یعنی میگی ما بلد نسیم تیردر کنیم؟ شهرو گفت من این را نمیگم البته که بلدین تیردر کنیم تموم برو بچه ها و زن و زیلای تنگ سیرم بلدن تیردر کنن این پسره که منم بلده تیردر کنه اما محمد یه چیز دیگه ایه خدا اون روز نیاره که شما با محمد روبرو بشین من شوورمو به هست شما میشناسمش، اگه از من میشنفین پر به پرش ندین اگرم ندیدی؟ فنچی با مسخره خندید و گفت خاهر تنصیر هرچی باشه از کرد که دیگه گردن در نیست من خودم با همین دستام پنج تا کرد کشدم تن شهرو لرزید از سر انجام کار محمد بیم داشت اما نمیخواست حرفای تفنگچی را قبول کند حرفایی که میزد بهش نمیآمد شهرو فکر کرد چیزی از روز نمونده نه تو بندر پیداشه نه تو دواست حتما رفته توی سولاخی کر شده. بیچاره حتما گشت نوتش نهم هست. صدای تفنگچی تو گوشش پیچید. اگه بوشهر باشه حتما میگیرنش. نایب خودش دنبالشه. شهرو گفت خدا نکنی. محمد خیلی آدم خوبیه. تو که هیچ وقت ندیدیش دیدیش. دلش برای شوهرش سوخت. توفنگچی جواب داد نه من ندیدمش اما خیلی ازش تعرف میکنن. میگن خیلی جوان میگن خیلی جیگر داره، راستی هم با این کاری که او کرده باید خیلی جیگر داشته باشه، اما خب، هرچی باشی یا حکومت حکومته، باید گیرش بیاریم. آفتاب تو آسمان مغرب یله شده بود و گرماری بیابان را زوب می کرد. شهر و بچه باز تو کپر رفته بودند. تفنگچی چی جایش را عوض کرد؟ آفتاب روش افتاده بود و چند بار جایش را عوض کرده بود. نشسته بود و چشمانش را به جاده دوخته بود خیلی گرسنه بود هرکس رد میشد خاموش به او نگاه میکرد هیچکس چیزی نمیگفت دو جوان تنگسیر رو یک بچه آمدن دور و نزدیک او زیر سایه لوکه نشستند تفنگچی آذربایجانی به آنها نگاه کرد و چیزی نتوانست بگوید بعد ناگهان بلند شد و رفت دم در کپر و گفت خواهر اجازه بده من بیام تو کپر وارسی کنم من همه جا رو گشتم و تا اینجا رو هم نگردم دلم راحت نمیشه. شهرو از تو جواب داد. بیا تو نگاه کن. تو که هرچی بهت میگم باورت نمیشه. بهت که گفتم محمد آدمی نیست که خون کنه بعد بیاد زیر چادر زنش کر بشه. تو رفت تو؟ تو که پر تاریک بود. آفتاب صحرا چشمانش را زده بود و تو تاریکی را نمیدید. شهرو بچه ها را هم اول ندید. بعد که چشمانش به تاریکی که پر عادت کرد، دورور خود را نگاه کرد و راه افتاد و یک راست رفت بهلوی توده کاه و های خشکی که گوشه که ریخته بود و لوده توفنگش را تو آنها فرو برد. ناگهان شهرو بلند خندید و گفت برادر، این چه کاریه که می اگه زیر علف ها باشه و لوده توفنگت را گرس و دستاش بگیری که اون وقتی که نمیتونی تفنگت را ازش بگیری؟ باز بلند خندید و خندش قشنگ بود و پسرک هم خندید و تفنگچی هولکی تفنگش را از علفهای خشک بیرون کشید بعد با پا رو علفها رفت و علفهای خشک را لگدمال کرد تو کپر جایی که بشود کسی آنجا قایم بشود نبود نه درگاهی بود و نه پستو دیوارها راست پایین آمده بودند تا کف کپر و چندتا تاخچهٔ کوچک که خرد و ریز توش بود تو کپر دهندره میکرد صدایی تاخت اسب از بیرون بلند شد و تفنگچی با شتاب بیرون دوید. یک تفنگچی بیشتر نبود. همان تفنگچی کازرونی بود که رفته بود بوشهر و حالا برگشته بود و دستمالی را که توش خوراکی بود به تفنگچی آذربایجانی داد و گفت: "نایب میگه من و تو همینجا بمونیم و تا شب کشیک بدیم تا اگه اومد بگیریمش." این را آهسته گفت و تنگسیرهایی که زیر لکه نشسته بودند چیزی نشنیدند و تنگسیرها زیادتر شده بودند. حالا چارت جوان بودند و دو سه تا بچه خاموش و مراقب تفنگچی آذربایجانی پرسید گفتی که هنوز گیرش نه بردن؟ این را بلند گفت و تنصیرهای زیر لوکه شنیدند و هم همه مردهای میانشان افتاد و باز خاموش شدند و زود گوشهایشان را تیز کردند که حرفهای دیگر توفنگچی ها را بشنوند نه مردم بندر پشتشند نایب میگه تو خونه یکی قایم شده که صداش در نمیاد میگه آخرش پیداش میکنیم شایدم رفته زده به کوکوتل شاید از این جونور هرچی بگی برمیاد به نظرم تو بندر میخوان خونه ها رو بگردن مگه دیوونه شدن کی میتونه این همه خونه رو بگرده اونم با ده بیست تا تو دارن خودش یه ما طول میکشه تا خونه ها رو بگردن اما اگه مردم پوشششن کی میتونه گیرش بیاره شب از این خونه در میاد می رو تو اون خونه بله مردم هوادارشن میگن اینا رو که کشته خون مردم رو تو شیشه کرده بودن و هیچ که نیست از دستشون دادش بلند نباشه تو چه کار کردی؟ من چند تا گشتم. همش همهش خاله خالی بود نمیشد همه کپرها را بگردی کت خدا راست میگفت که فایده نداره مگه رفته باشه تو چاه؟ اینجا خیلی چاهه شایدم رفته تو یکیش قایم شدی چاهاشونم مثل چاه آدمیزاد آدم تاشون قد یه میدون بازه اون وقتی یه گوشش یه از که آب ازش میکشن اونم به چی تاریکی مثل قبر میمونن من گفتم وقتی تو اومدی یکی دو تا چاه رو بگردیم شاید گیرش بیاریم تفنگچی کازرونی با تعجب به اون نگاه کرد و گفت عجب خری هستی مردک چشاش خون گرفته تو از اون پایین ببینه که یکی داره میاد تو چاه مثل گنجش میزندش مگه نمیدونی تفنگ داره اگرم با تیر نزنه میذاره وقتی آدم ته چه رسید، همونجا سرش را زیر آب میکنه. غهقهه تنگسیرهای زیر لوکه بلند شد. دو توفنچی حکومتی جا خوردند و آنها هم بلند خندیدند. یکی از تنگسیرها که زلف بور و صورت مسیرنگی داشت و نور سوزنده خورشید چشمان خرمهره رنگش را زیر ابروان بورش پنهان کرده بود، خندان گفت محمد آتش سیگار را از دیویز قدمی با گله میزنه توفنکی های حکومتی خاموش بودند تنگسیرها چهار زانو تو ماسه زیر لکه فرو رفته بودند و به آنها نگاه میکردند همیشون شکل هم بودند پیراهن سفید و شلوار تا زیر زانو با زولف پرپشت و اندام های درشت چالاک با نگاه های سوزنده حشیاری که بوی دشمن دو سر و پخش شده بود و مانند سکهایی که بوی گرگ شنیده باشند، برای کوچکترین پچپچی که از دو تفنگچی حکومتی در میآمد گوشهایشان را تیز میکردند. تنگ غروب بود و تفنگچی کازرونی که رفته بود از پا را آب بدد و از توده برایشان علیق تییه کند، برگشت. از را به درخت کنار بست و پیششان علیق ریخت و خودش و آن تفنگچی دیگری روی رملها برابر کپر شهر رو نشستند. چنان حواسشان پیش که پر بود که گویی هر دم خیال می محمد از آن تو بیرون می آید. مردم ده که کارشان تمام شده بود یکی یکی و دوتا دوتا می آمدند و دور و نزدیک آنها رو رمله ها و خاموش به آنها نگاه می کردند. پشت انبوه نقلهای سیاه گر گرفت و ماه پهن مالاریایی زردن بوی زیر پرده نازک قبار غبار مه به لرز درآمد. هنوز حرم خورشید تو افق غرب خون می‌پاشاند. رمه گاو و گوسفندان به کبرها رسیده بودند و ده خاموش بود. دو تفنگچی حکومتی دستمال نانی جلوشان باز کرده بودند و داشتن میخوردند و آهسته به طوری که تنگ سیرها نشنوند با هم حرف میزدند. تفنگچی آذربایجانی همچنان که لغمه گنده‌ای تو دهنش تپانده بود گفت: اگه محمد و چیکار حالا نونت رو بخور تا بعد میذاری یه لغم نون راحت از گلومون پایین بره یا نه؟ نه راستی اگه اومد چه کار کنیم؟ چمچاره مرگ میخواد چه کار کنیم؟ بگیری مشکی راستی که تو خیلی خری تو راست راستی باورت شده که میتونی محمد رو بگیریش؟ مگه ما دو نفر حریفش میشیم؟ پس چرا اومدیم اینجا؟ برای ارا معلوم میشه از جون خودت سیر شدی؟ آخه بگو چرا آخه اومدیم اینجا چه میدونم کاکا اصول دین میپرسی گفتن بری این مام اومدیم اما با جون خودمون که دیگه نباید بازی کنیم از این گذشته من که خیال نمی کنم محمد کار بدی کرده باشه چون یه خلقی رو از دست یه مش گردنگی را اسوده کرده این رو همه میگن بو شهریار دستشون دستش رو میرسید چراغونی میکردن توپچی آذربایجانی اوقاتش ترخ شد و گفت پس چیکار کنیم هیچی برو کنت بزن تو آب چایده من اگه دیدمش میزنمش او زودتر تو را میزنه حالا میبینی که خودم تنهایی میگیرمش همقطار قطار با بیحوصلگی جواب داد خیلی خواب پاشا برو بگیرش تو که هر چه بهت میگن نره میگی بدوشش آخه میون این همه تنگسیر محمد یه پختو دلت بکنه شلوار تو خراب میکنی تو میتونو محمد رو بگیریش؟ تنگسیرها هر دم زیاد تر می, می و آرام گله به گله صحرا مینشستند نشستند رو ماسه ها همیشان رو به کپر محمد مینشستند و با هم پچ پچ می کردند. نه آنها حرفهای توفنگجی ها رو و نه توفنگجی ها پچ پچ آنها را مثل زنبورهای اصلی بودند که یک چیز ناشنا و بدبو و بیگانه آمده بود تو کندوی آنها همهشان میدانستند که محمد آدم کشته و فرار کرده و هیچ کس نمی که محمد کجا فرار کرده و یک همدردی همگانی میان خودشان و شهر رو حس می کردند. بچه ها که کپر خوابیده بودند و شهر رو بیدار بالای سر آنها نشسته بود و هرچه از شب که رو دلش می سنگینتر و آشفته تر می شد و می دم کپر رو بیرون سر می کشید و تو توفنچی های حکومتی و تنگسیرهایی که گله به گله سهر نشسته بودند دل قشبش می داد. یکی از توفنگچی های حکومتی ازش آب خواست و شهرو رفت کوزه آب و پارچی آورد گذاشت پیششان و با سرگردان و ناخوش به کپر بازگشت